حالی مچکرم میدونم که در این ساعت یا پیش از این ساعت هم مشتاقانه مثل ما در انتظار رسیدن مهمان اجزا عجمندمون حکیم و علامه استاد محترم و مدرس طب سنتی و علوم اسلامی و سنتی و طب رضا علیه السلام و طب صادق علیه السلام بودید جناب حاج زیادی سلام رو ارزم کنم روز به خیلی سلام الله خودش شما بزرگ رقیه دستان در کاران و با آفیت و امنیت بداریم در خدمت شما و ملت شریف هست خیلی متشکرم. ما دیگه تقریبا داشتیم دقدقه پیدا کردیم حضرت حالی ما دیگه سازه ها مسافر بودیم دیشرب سمونیم رسیدم خیلی خب بسیار خوش آمدید سلامت باشیم مثل بوش. همیشه به روناق و زینت بخشیدید سلامت باشیم به بش. برنامه خودتون نسیم شرقی سلامت سه گذشته. خاطرم هست که استاد محترم پیرامون موضوع ناباروری صحبت کردن و کیست هایی که مرتبط هست با بلد بلد. داده بوده بله. بله. در خصوص زنان بله. بله. بله. بله. من خواهش میکنم باقی مانده اون مسلم رو خیلی سریع بلد. رؤوسش رو بفرمایید تا انشاءالله به پردازون به اهم مطالب بسم الله الرحمن الرحیم تومار خوشخیم انواع کیست ها حتی در تختان چه یکی چه دوتا یا تختان پولیکیستیک پی سی او در بعضی موارد تومار های بدخیم همچنین تجمع مایات اضافی بافتی این موارد رو بخوایم درمان کنیم یک صبح ها هنگام طوله آفتاب دم کرده گل استخددست یک قاشق چای خوری در یک استکان آبجوش بلن پین دیگه ده دیگه سب میکنیم دم بکشه بعد با اصل استخدوز شیرین میکنیم و میخوریم دوم غروب آفتاب یک قاشق چای خورید پودر افتیمون در یه استکان آب جوش میذاریم دم بکشه بعد با اصل استخدوز شیرین میکنیم و این مریض میخوریم. سوم شب شبها قبل از خواب یه قاشق چای خوری. از برگ دارواش این هم به خاطر اینکه برگشت های سرطانی نشه. با اینکه طرف قبلا رفته جرایی کرد این دوتای اول و اینکه این تومور یا کیست خشک بشه بدون جراحی تعداد اینها وزن اینها حجم اینها کم بشه و سپس مات بشه حتی انگلیسیا از این برگ دارواش قرص گیاهی اسکادر زدن. دارواش, بله بله. در دارواش در اتاری ها موجود هست؟ بله بله داروخونه مرکزی امام دکتر دوجاجی و بقیه بزرگوارا حتی این ها هستن چه های دیگه هم معمنا هست از برگ دارواش قویتر گل گل خارمریم و همچنین گیاه مخلصه اینها هم پیشگیری میکنه و جلوگیری میکنه از انتشار سلول های سرطانی برد. مطلب چهارم شب ها یه بشقاب جو ولی جو دوسر به اسطلاح بزرگوارا یولاف هر شب یه بشقاب سوپ جو که سبوس داره اونم جو یولاف یا جو دوسر به اضافه یه قاشق مربخوری یا پلوخوری روغن زیتون که مخلوط در این بشقاب سوپ بشه، باز نخلوطه با سرکه طبیعی انگور اسکری این بهترین شام این افرادی که کیست دارن یا تومور دارن داری. مطلب پنجام بهترین صبحانه برای اینها یک لیوان شیر تازه گاب کمچر با اصل استخدوست شیرین کنن میل کنن مطلب ششم که بسیار مهمه در پیشگیری از اکثریت قریب به اتفاق کیست کیستها و تجمع مایات اضافی بافتی چهار آب شیش تا بیس تا یعنی هر ساعت یکی از این آبها رو بخواه آب خیار بوته ای آب کاسمی آب کاهو آب بله حالا اون موادی که باید پرهیز رو خواهیز بله اگه بدید که یه بخشی رو ببینیم و برمیگردیم شما بفرمید میکنم Thank <laughs> you. خیلی ممنونم از توجه و همراهی شما بینندگان عجیز و عجمن یکی از موضوعاتی که مورد اتفاق نظر خیلی از بینندگان و همراهان وفادار این برنامه هست و مورد علاقه بینندگان خوب ما هست این هست که شما در خصوص کلیات طب اسلامی و طب سنتی برامون صحبت بفرمین حالا اگر نخواهیم به طور خاص به بیماری های اشاره بکنیم من توازه میکنم تو این بخش به صورت کلی تر راجع به طب اسلامی صحبت okay. بفرمیم تو بحث طب اسلامی که تمام شاخه‌های مختلف علوم پزشکی و پیراپزشکی پزشکی زیر مجموعش میشه الله طبیبان خدای متعال طبیبه چون خالق قادریه که تمام مخلوقات میدونه چی به چیه از جمله انسان چی به نفع انسانه چی به ضرر انسانه چه ایجاد سلامت میکنه چه چیزی ایجاد استمرار سلامت در فرد اجتماع کنه پس الله و حتی در دعای جوشن کبیر که هر وقت سال میشه شه خون مخصوصا شبای احیای ماه مبارک رمضان یا حبیبنا یا طبیبنا یا نعم الحبیب یا نعم الطبیب ما داریم خدا رو صدا می زنیم. پس مردم در یه گوشه زندگیشون خدا باشه زندگی خدایی داشته باشن سبقت الله یعنی معاذب سلامتی فرد و اجتماع باشن بودجه و حزینه اضافی بر اقتصاد خانوار و اقتصاد سلامت یعنی بودجه سلامت کشور هزینه اضافی وارد نکنن رضا پرهیز های سعیه ها اگر باشه 50 درصد از بیماری ها جلاش گرفته میشه بند. حتی تو همین بیماری های مورد نظر که بحثش بود مثلا چیزهایی که باید پرهیز کنن افرادی که تومور دارن یا کیست دارن فرگوده بودید بله چندهای شیمیایی نباید بخورن اسانس‌های شیمیایی نباید بخورن چربیای باتران سبالا بالا نباید بخورن کافئین زیاد فاست فودها یا غذای صنعتی سوسیس کالباس همبرگر نباید بخورن کنسروها کمپوت‌ها سرخ کردنی‌ها تفت دادن‌ها بودادنی‌ها کم تحرکی پرخوری بدخوری افرادی که کیست تختان دارن یا تختان پولیکیستیک دارن پی سی آو برسایی ضد حملگی نباید بخورن بردتر میشه حاجقا و لجن صفراوی هم میگیرن ده. تو پزشکی دیاری... جدیدن حاجقا تو بحثای کیست و تومار حتی بعضیشون جراحی میکنن طبق نظر متخصص بیماری های زنان بعضیشون هاشون جلسه پرتو و درمانی میدن به همراه روزی یک عدد کپسول تیر ماز که بعد از چهار هفته باز دوباره هر روز روزی سه کپسول فقط به مدت پنج روز دکترای محترم تجویز میکنن برای کیست داخل تختان برد. برس شیمیایی کنترا اسپیتیو دی با نام تجاری دیزو سپتیو برد. مثلا تجویز میکنن که نام دیگرش هم مارالونه اینا دیگر زیر نظر متخصص گیمیری زنان باشه خیلی متشکرم سازیایی عزیز برد. درحال مصالیبی که در جلسات پیشین هم ارائه شده از سوی استاد دانشمند محترم جناب آقای زیایی همه و همه در مسیر بهرهمندی صحیح و دقیق از گیاهان سنتی و د... گیاهان دارویی بوده و امیدواریم که سلسله مباحثی که استاد محترم مطرح کردند در خصوص نحوه و کیفیت و چگونگی گیاهان دارویی مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. اینکه ما بپردازیم به این ساعات تغذیه همون پرهیز از مواد غذایی که حالا چاک است یا ممکنه برای ما زرازیان هایی داشته باشه همه و همه مواردی بوده که استاد محترم در قالب تخصصی تر و برحال کارشناسانه تر اشاره داشتن سپاسگزاری میکنم. یه بخش دیگه هست خدمت استاد خب من تغازم میکنم چون ایام فاتیمی هم هست با ذکر دعای اجازه بفرمد این بخش رو خاتمه بدیم به فدمت شما از کنم که حضرت زهرا سلام الله علیه هم با عملشون هم با گفتارشون کردار شایستهشون اخلاق حسنشون در سای متعددی به ما میدن از جمله در بحار علامه مجلسی جلد 43 آکان نقش و خاتمه ها امن المتوکلون نقش نگین انگشتری حضرت زرای این بود که در ایمنی کامل فردی و اجتماعی و حتی شغلی هستند کسانی که یگانه تکیگاهشون و اعتمادشون به خدای متعال به قرب و شرق تکیگاهشون نیست تو بحثای گفتاری حاجها فلسفه احکام رو که جلوی افراد فرمودن در مسجد از جمله خدای متعال امامت رو در جامعه واجب کردن امانن من الفرقه تا گرایی، مذاهب ساختگی تا اختشاش داخلی یا نه آنی خطوط مرزی نباشه مسلمانان از شیعه و اهل تشیع نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها کوتاهی کردند دشمنان در باطل خودشون تعصب دارند من یه نمونه خدمت شما عرضه می کنم و برای بزرگوارا. شما ببینید ملکه انگلیس الیزابت 80 خورده ای سال عام می کنه. سال بیشتر او رو نگه می‌دارم. اما مسلمانان بعد از شهادت رسول الله 18 روز نتونستن حضرت زهران رو نگه بدارم. و اکثریت افراد از مهاجرین و انصار، به ندای حق حضرت زهره پاسخ مثبت ندادن با اینکه حضرت زهره سلام الله علیه هم ملکه اسلامه آیا نباید پاس داشته ملکه اسلام کرد؟ آیا نباید دحیائن شعائر فاطمی کرد؟ که همش ترویج کمال ترویج اخلاق حسنه است ترویج خانواده شایسته است دارای افراد هوشمند هدفمند سعی با ذریب سلامتی بالا این نسل حضرت زهراست که عمر مفید با آفیت دارد عمر طولانی با برکت دارد زیرا که خیلی کثیر است دارای علم و یقین است کارهایی که در رابطه با شوهر در رابطه با اولاد در رابطه با امت اسلامی انجام میدهد همهش برخواسته از علم و یقینه حساب احتمالات نیست تقریب نیست سطینگری نیست آمارهای سطحی نیست بلکه کارهای حضرت زهرا علم و یقین است اوست که کسره اگر امت اسلامی احیاء شعائر فاطمی کنن حال روزشون از این بهتر میشه انشانده. تا بخوان کپیرایت کرکرانم از قرب و شرق کنن و فقط به ترجمه کتابهای علمی از قرب و شرق کنن و تحقیقات و پژوهش خودشون رو تعطیل کنن خیلی متشکرم از تشریف فرمایی سمیمانه شما از اینکه حضور معصری در برنامه نسیم شرقی تا این جلسه داشتید بنده به سهم خودم تشکر و قدردانی می‌کنم ان همطور که حضرت علی هم اشاره کردید باز هم شیعیان عزیز همیهنان میهنان خوبمون وفاداران به اهل بیت دوستداران و محبان اهل بید در تجمع بزرگ فاطمی نشان خواهند داشت که همیشه و در همه جا الگووی زندگی ما خانوم فاطمه زهرا سلام سلاملهله ها بوده و هست و انشااءال الله خواهد بود. تشکر میکنم احتاعتماس ادعای بسیار دارم از منظر تو سلاممت و از را دعوت میکنم به بخش بری برنامه توجه دفید سلاممت.